بسم الله الرحمن الرحیم دوره مبانی فقه نظام کلاس استاد سید محمد تبا طب تبایی جلسه دوم بله نه شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خب بحث اول ما تو جلسه یقیقی بحث محکوم شناسی بود یکی سوالی داره به که دیگه بحث خاتمه بدیم تو دوستان اینجا سوالی داشتیم نیست بله خودم مبنی آیه رو نیا کنین آیه رو گفتیم چه بود سوره عالی امران و اگه خواستی نگا این سر رو چاره کشته کنید ولی تکن من کن امتون ید اون ایران و یعنی اون ایران معروف و قسم هون ایران اینجا اینجا اهم امر پرنگی هم مداخله در اشتریب شده نگا این موضوع دعوت شده اینجا خیر دعوت به چیه خیر امر موضوع چه شده معروف نه موض این یعنی شما ما اونجا یه خیر داری، یه معروف داری، یه منکر داری. بعد اینا رو بشناسی ارزیابیش بکنید، بررسیش بکنید. چه معروف معروفه، چه منکر. اتفاقاً، علی یک اختکار خوب تو خوبه، صاحب وسال تو وسالش اینه که غیر از ابواب الامر که, که واقعا انگارشون همین تکو فرنگی هم داشته. این بحث م... یه ابواب واقعا داشتی معروف و منکر. که معروف چیه، منکر چیه. ما یه باب خیرم اضافه می‌کنیم. اینکه از اون مستی اصول کافی. یه بحث خیلی مهمی آقا معروف چیه منکر چیه خیر چیه بعد اینا می رو میام می‌گم مسائل روز که تطبیق بدیم این بحث که چه نشون می‌ده یا بحثه تو شکل می‌گیره میشه که نظام فرنگی ما یه گفتی این مسائل رو این ادله رو میام تطبیق نمیکنم رو موضوعات مسائلی که نظام اجتماعی معاصر ما داره چه چی میشه می فرهنگ عمومی میشه فرهنگ میشه فرهنگی شما تو این فضاها بسنجید معروف چه مشی خیر چه. سعی اینجا مشی فخن نظام فرهنگی. بازه. خب حالا شما میخواید توی این سه تا مداخله کنی. توی خیر چه مداخله میکنیم؟ چه دعوت. توی معروف چه نامو چه مداخله میکنیم؟ چه امر. چیه منکر چه طور مداخله میکنیم؟ چه نهی. اینا میشه مداخله. می خوام اینجا یه به نظر میشه مشی حکمیه شاید بهتر بگی. این سه مداخله و خودش یه ساختار فقهی مجزایی رو میطلبه این مداخله میشه فقه نظامه مدیریت فرهنگی این قسمندی که ما کردیم ولی بقیه سایر آقایون میکنن فقه نظام فرهنگی که منظورشونه همه این رو یک میکنن میگن خب نظام دیگه نظام که خب میشه خب میشه نظام از یه حالت کلانی داره خود به خود فرهنگ و سیاستا اینا رو همه رو تو هم ادغام می‌کنن یه ملقامی میشه یعنی بیشتر به نظر من فخ سیاسیه فقه فرهنگی این عملاً مسئله, ای مسئله فرهنگی دیگه نشوش نمیمونه. ولی خب مسئله فرهنگی که مدل مجزا است دیگه. یه نگاه کلیه فقط واسه مفاهیم شناسی بود البته. باید بحث نشد. ما اون یه بحث روش شناسی هم داریم ولی حالا اجبانا اشاره میکنم ولی خب وقت نشد. میخواستم جلسه قبل بحث کنم میبخششون. نه میگم ما یه مبانی روش شناسی داریم، یه قواعد روش شناسی داریم. حالا هر کی تونشه مقداری توضیح اشاراتی بکنیم. کنید ما توی بحث دعوت که اشاره کردم این قسم دعوت که گفتیم تو فقه فرنگی هست یه ثمره ای برای ما داره تو بحث موضوع فرهنگ و مکلفه داره فرنگی کنید وقتی ما میگیم می‌دونید یه قاضی چی داریم تو قاضی فقیه حتماً شنیدین قاضی ارشاد جاهل این قاعده ارشاد جاهل تو کتاب طهارت که مثلا میاد شیخ میگه چی میگه این کتاب طهارت میگه این ما واجب نیست مثلا کسی بیاید صن اعلام بهش بکنین که این نجسته مثلاً. اعلامش واجب اعلامش واجبه ارسال جاهل اونجا واجب نیست اما ارسال جاهل وجوبش توی فقه فرنگی منات داره یعنی میگن یعنی موضوع حکم فرق میکنه اینجا شما جاهل یعنی حکم پیدا میکنه شما نمی‌کنین تو بقیه فقهتون فقه با جاهل قاصر کار ندارید فوقش با جاهل مقصر کار دارید جاهل مقصرم کیه کسی که میتونست تحصیل علم کنه نکرده یعنی اونجا هم باز جاهل مقصرم بحث علمه. اما اینجا نه ما تو فقه فرنگی با جاهل هم کار داریم و اون تعریفی که گفتیم هم بحث مداخله و به ساختار وقتی بحث ارسال جاهل میاد شما رو مداخله تعریف میشه پس از این از یه جهت که موضوع ما تو فقه فرنگی هم از عالم و جاهله هم جاهل قاصد رو در بر میگیره نه اینکه ما جاهل قاصد رو مکلفش بکنیم از این جهت که مداخله بکنیم خود به خود خود کدا یه بحث دیگه که تو این خصوص باید مثلا اگر نگاه کنیم ما از حکم وضعی بعدم قافل میشیم بعض وقتی که ما میخوایم مثلا طرف موضوعات جدید بحث کنیم بعضیا میگن که نه اصلا شما میگید که از این از این حرامه مثلا سری ذهنشون میرسه سر حکم تکلیفی واجب است تو حرام است تو مثلا ولی واقعا ما عمده قواعد فقهی حتی مثلا نگاه میکنیم این حکم وضعی هستند که تکلیفی نیستن میگن حکم وضعی این چیه اما تکلیف توش نیست میگه آقا این اثر وضعی بار میشه میگه خود به شارع ها از این جهت که حکمه اما تکلیف توش نیست میگه آقا وضعا این میشود وقتی تکلیفی میگه میکند این باید بکند اما وقتی وضعی میگه میشود یعنی شما مثلا اگه یه چیزی نجسوب نجس شد دیگه خب دیگه یه چیز نداره گناهی نکرد تو ما تو فرق فرحانی ما تو از همین میخوایم استفاده کنیم خیلی از حکم وضعی کار داریم باهاش هم تو هم خود نظام فرنگی مون هم تو مدیریت فرنگیمون تو هر دو تا این قضیه کار بکنی مثلا میگه کنه ای سلامات کسی کسی گفتیم میگه نظام موضوعات ما چیه گفتیم فرنگ شهریه خب حالا شهر چیه؟ این موضوع دیگه من بحث کنم. نگاه با میخوام داشته باشم. میگید یه مثال داره میذاریم. میگه موجان ما ادله رو نگاه میکنیم. یه سری احکام جزئی داریم که این احکام وضعی بدن چون خیلی مستتر در احکام تکلیفی میشه ماو نمیبینیم. به نظرش نمیگیریم. اینجوری دارم من یه قاعده ایه ما یه قاعده تو ف... اه... توی حالا فقه نظامیه فرنگی تعریف کردن 21 قاعده ما اینجا احسا کردیم. اول بخش, بخش هم از خلاصه فقهی بخشا نه مستقیما از عدلیه است یک از اون قواعد نمیگن قاضی عدل و انصاف حالا قاعده عدل و انصاف توی فقه ما یه معنی رایتی داره که حالا اگه مثلا دو نفر با هم اختلاف پیدا کردن یه مالی بینشون بود اختلاف پیدا کردم، حالا خواستم به نه هم تقسیم کنن هیچ اماره ای هم نبود بینشون یعنی تقسیم کنن به مساوات این میشه قاعده عدل و انصاف تو نگاه مشهور نمیگم که وقت ذهنتون اونجا نره اما ما اینجا یه تعریف قاعده عدل و انصاف داریم میگیم که تو جامعه اسلامی دسترسی های برابر باید این مساله فرهنگی باشه اونا اینجا عدل هم مفصله اون چیزا لازم پیش قاعده ادلسفه باید توضیح بدیم تا این بحثی مف... که هم یعنی هم فقه فنن هم مساله کو باشیم هم طبشناسی کنه بشه که این مفهوم فنن شهری که ما میگیم منظورمون چیه میگویند م... این قاعده اینه که به این صورت که چون مساله وقت کم شد معدل شدیم به عقب جلو کنم که دیگه با هم یک کاسه بشه یعنی این آخر درس با هم اضافه کنیم میگویند ما میگیم که در یک جامعه فرنگی بسیار مویدهای فرنگی وجود داره حالا این محیطای فرنگی یا های فرنگی است که شارح گفته یا های فرنگی است که ارفیس تو جامعه شکل میگیره صورتای مختلفی داره مثل کتابخونه مثلا محیط فرنگی ما میگیم از ادله ما داریم که ما میگیم محیط شرعی رو مثل مسجد سا. که یه محیط مکانی چه نماز جماعت سا. یه محیط اجتماعی محیط مکانی ولی این دسترسی برابر و این مردم ادب تمام محیطای فرهنگی این یکت قواعده. اگه یه صورت هم الان اگه جایی مطالعه کنین کتاب فقه امام شهری هم یه علامت اینکه هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم که دا هم هم که هم خب این هم که هم هم هم هم هم ادلهشو بگیم روایت مسجد داریم روایت نماز جماعتو داریم روایت مسجد چیه میگویند روایت امام صادق علیه السلام قبل روزی ابن زبیر ان امیرالمومنین علیه السلام بلغه ان قوما لا يحضرون الصلوات فی المسجد ترجمه که واضحه ترجمه نکنم گزینید انجام میدید نگنید اخذ نعم گم روایت رو ترجمه بکنم یا نکنم حالا بود ترجمه بکنم که جو اجازه نه اون بگید حالا دهنم خوش شده دیگه اینو نفرس. ان امیرالمومنین بلغه و ان قوما لا يحذرون الصلاه المسجد. میگه او به امیرالمومنین خبر رسوندن حالا این هم یه بخش از حکومت اوکنونی اجتماعیه که گزارش های عمومی و اینا یه از هم مدیت اجتماعی همین بلغه وست. و امیر امیرالمومنین خبر رسوندن که یه, یه بخشی از جامعه نماز برای نماز جماعت تو مسجد حاضر نمیشن. حضرت گفتن که این قاً لا یه هضرون از سرات فیلممس معنافی ساجد ما شنیدیم که این کار رو میکنن پس چیکارش کنیم کنیمیم؟ و لا آکنلونا نبا ما قضا نخورن لای و شدهگونا لای و شاوررو ها لای لا ناکهونا، ها نبا ما قضا بخورن نهبا ما چیزی بنوشن نهبا ما ازدواج کن هیچ محدودیت اجتماعی و یه خصو ف آ سشون به ت ما قطع میکنیم ولی این شرایط درانیم که ببینیم تو این مسمثل خصصمثل. معنا یا اینکه بیان ناموز زمات باید حاضرشن. اونا اون موقع یه مبای بحثی نفاق و اینا بوده، شاید قرینه بر این باشه. فهمتن المسلمون و مصطفی علیه السلام ادامه‌ی حدیث اضافه میکنن که فهمتن المسلمون عن مواکرهتم و مشاربتهم و هم حتی حضور جماعت مع المسلمین. این کاره کدن اینا بلکه شان سر جامعه. داشته باشین حالا کار دین. روایت دوم از سیده گفتم اینا سیده روزیق ابن زبیر. تو وسایل جل 5 یه خاصی نگاه بند. قبول <تصفيق> صلوات من صلى في بيت الحج جماعتا رقبا عن المسجد فلا صلات لله ولا على من صلى معه الا من علت منه من المسجد میگه که نماز جماعت تو خونه برگزار کنه بلکه مسجد نره این چه کنه این نمازش قبول نیست اون کسی هم که با این نماز بکنه نمازش قبول نیست مگر که یه علت معقلی داشته باشه خلاط تو این دلایل چجوری میخوام اضافه کنید نیا کنید توی این روایات بحث وجوب اقامی مسجد مطرح شده این خیلی مهمه. امبال مؤمنین به عنوان ولی امر در مداخله میکنه. این امر سیاسیه. چرا امبال میگه آقا همه باید بیان مسجد؟ امت اسلامی همه باید بیان مسجد. این خیلی مهمه. یعنی باید مسجد باید رکن مسجد باید اقامه بشه. این یه مبنای خیلی مهمه. در واقع من هم همین. میگه اون شرکت تو عمل مسجد. پس اگر مسجد اقامش باجبه است خب حالا شما بید دسترسی مل... مسجد رو یه جوری بساز تو شهر دسترسی برابر نباشه خب اقامه مسجد منتفیس پس از این وجوب اقامه مسجد یه حق دسترسی برای سایر عموم مردم استفاده میشه که بیان حق برخورداری از مسجد داشته باشن تو محلی خودشون این ثابت میشه این خیلی مهمه. اگه اشکال دارید دا بگید. روایت بعد می کنین چی؟ بادم گفتم چون ولیع اعظم داره این کارو میکنه، امیل مؤمن همون ولیع اعظم داره این کارو میکنه. بس عمو سیاسیه، مداخله توشه، حکومت موجوده. نکتهلا، نکنه یه نکته هم خیلی مهمه. آخه که روایت سیری امیل مؤمنو میبینید، این وقت میگین بحثی معروفینه که میگن وا سیره دلالتش مثلا بر وجود نیست. اما سیره حکومتی دلالت بر وجود داره. غرینش هم کجاست؟ تو انتهای عهدنامه‌ی مالکه هاشتا. وقتی امیرالمومنین توی اون امتها، از روابط شغلی داد کنه، امتها این موضوع باید حضرت میگن که نگاه کنیم. یکی هم میگه اتفاقاً تو روابط نه انجو بالا کنه، این کامل تو روابط تو حفظ اول نگاه کنیم که عظمتش مثلاً کاملش اونجا اومده، نه انجو بالا کنه اومده. اونجا هر میگن که حالا من این همه مثلاً مسئله حکومتی و عادا به حکومت داری اینه بهت گفتن تا آداب نیست، مسئولیت اولیت آن عادا که میگیم تسامح، چون آداب که میشه سر مصابت مثلاً ذهن میره. حضرت میگن که تو به این سیره منم اقتدا کن. ببین ما چیکار کردیم تو همون کارو بکن. این خیلی مهمه. یعنی سیره‌ای که من انجام دادم مستحب نبوده بوده. سیره حکومتی بوده، واجبه بوده، باید اموال اطاعت کنیم. پس سیره‌ای که من الان که اینجا انجام دادم دلالت سیره، اینجا وجوبه. دلالت سیره حکومتی. قرینهشو میگفتم، اینجا دل... قضیه قرینه که نیست، میگم دلیل وجوبه. همون انتهای احکام مالکیه هست داره. بحث نماز هم یه بحث همون نماز جماعت من سری روایات داریم. می‌دونید؟ همون آ نامی ملکاشته. امیرالمومنین سلامات اهل من امیرالمومنین به ملکاشته. صحیح تصحیحش کنین. یه بحث چیز دارم میگم. خلاص همونام که اگر قمت فی صلاتک خاص نماز بخونی، نماز جماعت بخونی، این متفقهن دلالت داره که نماز جماعت رو به حاکم خودیش بخونه. یعنی حضور اجتماعی باید داشته باشه. باز این همون واسه مجلات اجتماعی فرهنگیه. یعنی حضور اجتماعی، یعنی خودت باید این نماز جماعت بخونی. که فرنگ جو بیفته وقتی خودی مثلا مثلا استاندار مثلا نماز جماعت نما نکنه کنه خب شرکت نمیکنم یا تو که مالکی تو که امام جماعت شو خواستی نماز جماعت بخونی چجوری بخون فلا تا کنن نما ولا تنفر ایجاد نکن آدمانم تذیه نکن یعنی چیکار نکن فان فنوس منده الا ولا هوجه میگه یه سری آقا یه سری نمیخوام استون دلیل میانه حضرت سیره رسول خدا فقس انت رسول الله صلی الله علیه و آله صلی الله محمد طالب ان ان وج حضرت چون اگه تاریخ مطالعه کردین بچین اواخر حکومت رسول خدا امین المؤمنین یمن رابطه در موقمی که حضرت خواستم من حاج طلبه ها حضرت یمن بود یا اون موقع که من از حضرت برای من به اینجوری گفتن ازشون پرسیدم کیفه صلی بهم چجوری باشون نماز بخونم تموند فقال صل كصلات اصفهم و كن بالمؤمنين رحيما یا مثل زي نشون نماز بخون به مؤمنین رحیم باش رحمت باش و مراعاتشونو بکن یه روایت دیگه هم روایت امام صادق علیه السلام صحیفه ابن عمار و یا ام في مسجد الا رسول الله یوتدول قراءه و انه مر بج رجل فافتتها سوره طويله این جه مواضعن جبل از اصحاب رسول خدا از, از اصحاب رسول خدا توی یه مسجد میدونن که نه مسجد زمان رسول خدا در دور مسول نبی بود که اینا اذان مسول نبی نماز میخوندن یکیشون مواضعن جبل بوده خب حالا ایشون نماز قرائتشو طولانی میکنه یا آقای میان نماز شرکت میکنه میبینه سوره طولانیه عجل نفسه ایی وطله اون مرک و رالت آقا نماز فررادا کرد و سو سوار حالا راهحلش حالا هرچی بوده اسب بوده ال بود حالا ش بوده هرچی بوده رفت. فبل قزوا که رسول الله و رسول الله خبردار شد. معاز. بیا. معاز. معاز. به اسیلا معاز معغاض رو بگید بگیرد بیاید بیا تقال یا معاض ای معز چکارگردی؟ یا کم تونه فان عل که به و ظه ها شمس و زوا آقا جون س شامس عضده ها. ی نه چیز نکن سرای پول هم نخونم که مردم خسته بشن سرای کوتاه بخونم که با این زابتاها مزه که این مثل این سرای ها فتنه نباشد مردمو چیز نکن فتنه گری نکنیم مزه فتنه از اون این که نده. خب تو این فایوری ندارد خوب راه تو اینجا مات چیزیه اینجا هم باز مطروحات نمود جماعت دری می دیم که آوا مردم باز همه باید حق دارند صد نمود جماعت امام جماعت باید مراتع عوامی رو بکنه تا همه این دسترسی برابر نصب نماز جماعت داشته باشن. خوب این چیزی هم که دیگه واسه منو می‌کنی مثلا بحث حکومتیه واسه بحث مالکیت داره واسه بحث معاضری که مرتضی مدرسول الله رسول الله در مقام ولایت امر داره صحبت می‌کنه این ادله ما از این ادله ما می‌تونیم حالا تأمین بدیم اینه که دو جور صحابت کردم حالا هر مورد فرهنگی شرعی که ما بسم ثابت کنیم حالا مثلا حج زیارت و نه همه رو دیگه شامل کنیم یا آقا همه وقت تاسی داشته باشن تاسی برابر داشته باشن توی یک شهر ما اسمش شهره یا کنید بحثی نمیکنیم بحث واسه موید فرهنگی عرفیه موید فرهنگی عرفیه مثلا مثل کارخانه مثلا هر جایی دیگه که شما مثلا ایجاد بکنید فرهنگ سرا میخواید بزنید نه رو بعد چیکار کنم نه دو صورت داره اون کنید تو فرهنگ عرفی بحثایی که ما داریم یه وقت به این صورتی که اون فرهنگ عرفی رو مطابق شریعت میبینیم یعنی مخالفته با شریعت نداره اونی واقع مخالفه باشه یعنی نمیگه موافقت شرط نیست اینجا اینجا متاب عدم مخالفت شرطه چرا میکنیم ما یه قاعده فقهی دیگه داریم تو تخون فننگمون اینجا قاعده رو تکمیل میکنه اینم قاعده خیلی مهمیه که دیگه اینو از آقای یکی بدم اینو از آقای فقهی من شهری نگاه کنید اینجا با تکمیلش کردیم رو تکمیل کردیم بحثش هم ملا مدلول قاعده تکمیل کردیم استیشون موناقده نمیکنه اولا فرم مطرح میکنه باز اینجا ادامه میدا کیه ایش... یه حالا یه تو اونجا داریم اونجا گفتیم میشه که سنت رسول خدا نباید تعطیل بشه حالا اون یه بحثه که میگم رو تکمیل میکنیم چه تا روایتشون مثلا میکنن؟ صحیحه زود و تا صحیحه دراس آیه قران هست اینجا ما بحثی که میکنیم میگم که یعنی من چون بعض دوستان مطالعه کنم یا یعنی اون کتابو بعضی دوستانم گفتن دو صفر اتفاقاً من شاعریه، جبا ایراکیشم کتابشون هست، اونم فقه فرنگی عملاً. عملن، من از خدا من گفتم. میگویند کجا بحث بودیم؟ گفتیم فادیه اد بین حساب داشتیم بحث می‌کردیم. گفتیم اینجا ادله ما. محتوی فرنگی شهر رو گفتیم ادله اون مسجد نماز جماعت. یه بحث دیگه گفتیم محتوی فرنگی اورفیه، محتوی فرنگی عرفی رو ما باید با سنت‌های فرنگی بسنجیم. ما یه قاعده داریم. میگویند فرمات تعظیم سنت. یعنی نه سنت نه نه رسول خدا. مستحباتی که در اجتماعی می‌خواید می‌گویید. حتا افعل معروف همون یعنی یه خیلی معروفه، منکر نیست، اما تو شریعت نیومده. مثلا تام یادتون میاد بین اقوام خیلی زیاده. مثلا یه اعتام میکنن. خب این اعتام که مثلا تو دین نیومده. اینا ما بعد چیکارش کنیم؟ اینا اتفاقا امیرالمؤمنین مفصل تو مالک بمولک توضیح میدن که لا تنقستون تن صالحا عمل به حضورها ذل امه و استمعت به الالفه. یعنی واقعا این جه سنت خوبی شکل گرفته صالحان این امه تمالا اینو درست کردن. جامع همیش عادت کرده خب همیشه نزن این میشه باشه ده دقیقا میسم عادت کنه چرا که مزاحمت درست می کنه بقول من آزاری مازاری نکنه مصلا حد علی الریجه خب از جامعه با همین اصلاح شده دیگه خب خیلی یعنی نزمی عملن این شکل گرفت منظور اینه با حته تکمیلی میکنن حزار لا توختسان ولا توختسان سنته حذروا بشیئ من موزیه الکسونه میگه فرانکس خاصی بکنی اشکال نداره اما یه فرنگی ایجاد نگوری که دوباره هم بزنیا. اینه واسه واس نگا هست داریم. مادام که بر این شرایط هست که جامعهش الفت گرفته دیگه تا دیگه این پای امر سنت حساب میشه. وقتی خب جامعه دلش دوری بکنه که دیگه میشه امر مندرس. اندراز پیش می مونه. سنت نیست. از بین دیگه رفت. اما تا این هست تو فرهنگی دیگه هم ایجاد نکنم. خب حالا اجمالا حالا ادلهش مفصل این قائله. اینو ما اینجا میاریم استفاده می وقتی که سنت های ها فرهنگی معروف که مخالف شرع نیست ما البته موافق شرعه، مطلقا نسی براش نذریم. این اومده این محیط فرنگی و عرفی روی فضا شک گرفته. خب، اینجا اساس اون قاعده که تعمیم می میگه تضمین میدیم میگه ما اونو باید حفظش بکنیم. اینطوری فرنگی شاعری مثلا کتابخون از خود بعد اونجا این قاعده هست. نمی‌کنه وقتی که یک سهم کلی برای جامعه اومد شما نمی‌تونی بین این سن تعویض قائل برای همه پس سخت سهم برای همه است. دستاسی هم باید همه باشه. این می یعنی ملازمه عقلی دیگه. این بحثو داشته باشیم حالا این بحث اومدیم واضح تا اینجا خب حالا میان میگیم که بر اساس همین قاعده ما گفتیم چی تو ف... شهر اسلامی باید استاد به این موهیت‌ها خارج خب. محیط ها چیه نماز جمعه است نکنید. توی اه... نماز جمعه میگه که این موهیت هاست. از این ادله ثابت میشه که چی میشه دسترسی برابر به نماز جمعه برای تمام شهروندان لازمه خب این یه مقدمه حالا لساسش لازمون حالا چیکار کنه نبینید یه حکم وضعی من دارم اینجا که توی اون حکم تکلیفی مستطنه شده اونم فاصله با فرسخ است از مکانه حالا خانه هر فرد تو شهر تا نواز جمعه میکنیم بس رو فراموش نفرم توی بس روشنسی فقی فرنگی بودیم اونجا مفهوم شده میخواستیم بگیم تفاوتهای موضوع و مفهومی رو بگیم موضوع و بعد اما دیمیم مستاق بفتیم محلوم شهر مونه, مونه این از موضوعات فقه فرهنگ شهری بعد مونه این قاده عدوانسان که دسترسی برابرد شهر و این محیط ها لازمه این از اون محیط ها چیه که این قاده برشت ارادت نماز جمعه است نماز جمعه یه یعنی است که باید همه بهش دسترسی داشته باشه خب فاصله وجود داره چقدر دو فرسر توی احکام مدرمی میگه این بین مکان هر خالی محل منظری و بعد اون محل باشه یعنی اون دسترسی باشه یعنی چیه؟ عملا اون دسترسی برابره شما اونجا رو نماز جمعه رو این وسط شما فرض میکنه دو فرسخ, دو فرسخ دورش این میشه محدودی نماز جمعه این میشه دسترسی یعنی خود این دسترسی برابره رو شر اینجور تحریف جده که این در زمان منصوم شده نصف روز می شده یه نصف روز می شده حالا الان فر. و همین مبنا که حالا مبوع مشهور هم هست که فاصله مکانی رو شرط میدونن می دونم، فرسخ ملاق میدارن نه فاصله زمانی که حالا نصف روز باشهید. خصاس این مبونی فرسخ، یک می و این شکل میگیره کم دقت کنید که مس چی هست. دسترسی برابر فاصله معین توسطور شاره خب اگه قرار باشه این دسترسی باشه فاصلا با نماز جمعه حفظ بشه چی میشه؟ شهر همش محدوده ای بلا میکنه یعنی خود به خود از این محدوده که دور شدی میشه یه یعنی شهر دیگه. میگن خب بازیو تکلیفی نیست. وقتی یه فاصله رو شما ده نظر گرفتی خود به خود از این فاصله وقتی دور شدی دیگه دسترسی و اون نماز جمعه نداری. شاید گفتی میگه دو فرسخ دیگه نصف روز. حتی مکثی هم درو. خود نصف روزه. فاصله بود بخدا همین مثلا گفتن که زیق وقت داره اعمال روز جمعه رو مثلا این صبح پنجشنبه انجام میدادن سو کلا مشودن میرفتن مثلا که خودشونو بدن حل نماز جمعه برسونن حالا شاید مثلا یکی قائل بشه مثلا قائلن الله ولی فقهای اصلیه مقائل نیستن که مثلا مبنى زمان رو قائل بشن که بگن آقا نه مبنای ما روز نصف روزه مثلا یا مبنا مثلا تو مسافرت مثلا 22 فرسخ نیست تو یومه یک روز مثلا روایت ماتا یک روز نه یک روز فاصله مثلا چند کیلومتر میشه یک روز فاصله چند کیلومتر میشه مثلا اون قدیم، حالا این یه مبناییم که حالا شازده، فلان بیستی بیش قایل است ولی مبنای مشهوره مبنای مشهوری که بین فقاها ها هست همینه اینجا میگیم دلالات فرهنگی احکام همینه این یه حکمه احکام ما هست دو فقه ما هست این هم عدله میذاریم کنال هم دیگه میبینیم توی فرهنگ چه نمودی دارن اینا این میشه دلالات فرهنگی حالا نیمون کنیم ی حالا شما. شما, شما با اینجا قیاس کنید با مفهوم مثلا کلان شهر مفهوم مثلاً با مفهوم بلاد کبیره الان ببینه آیه مسلم این شهر این نمیشه بلاد کبیره هم با کلان شهر کنم یه تفاوتهی داره تو بلاد کبیره بستر اینه که مثلا یک شهر هر محلش مسابه یک شهر حساب میشه ولی خب کلش بذارم یک شهره یعنی شهر نام تعرفه ولی خب کلشو بذارم شهر میدونن یعنی وقتی مفهومه که با بن جلل دیگه بلاد کبیرم عملاً شهر چند شهره نه شهر نامتعارفی که چند محله داشته باشه این به نظر من مفهومو فرق میکنه الان این باصره بیرون نبرید میگن هفت شاز ده در مرتبه که مبانیه چون بلاد ما خیلی مفهومه معروفه حضرت امام رحمته الله علیه تهران رو بلاد کبیر میدونستان یعنی هر محلی که شما توش هستی، عرفن محلش شناخته میشه. از اونجا مسافت شهری رو میخوای ولی حساب کنی. مثلا شهر ری میخوای بدید، منطقه 32 مثلا میخوای بدید منطقه 1، اونجا باید مسافت شهری حساب کنه. تا الان فقط با قوانین هستم. خب مفهومم سنازلشم بگم که ببینید کجا کار بر داره بس. ببینید شما نگاه کنید من واقعاً مفهوم بلاد کبیر با این مفهوم توی فقه فرنگی ما پذیرفته است. آیا مفهوم کلان شهری تو فقه فرنگی ما پذیرفته است؟ مگه با احکام وضعی داریم می‌بینیم جلو بس سر اینه که ما میگیم از طریق اح... ما احکام وضعی رو نباید نادیده بگیریم این یک بحثه ما쨌ه حمید روش شناسی یادم نفه توضیح بدم نمی‌کنیم ما یه روش شناسی داریم یه روش داریم خودمون روش وقتی میگیم همون روش های استنباطی و استدلالی که هست. ما میگیم روش شناسی اینه یه, یه منطقی عملن خودش روش شناسی یعنی یعنی مفروضات بونی شما پیدا میکنی؟ این مفروضات بونی شما بر همه جا نقش داره. این میشه روش شناسی. که توضیح روش شناسی مشخص است. که در موضوعه هم. حالا تو روش شناسی فرقی میشه در موضوع اثر در یا موثره یه بحث دیگه نیا کنیم. بحث نسبت فرق فرهنگی و علوم شما یه. خب، کنم اینو بگیم تموم شده تو نیم ساعت شد. یبا خیلی مهمیه نگاه کنید ما تو فرهنگ کلا قبل از که دوستان نشون دادم دستی کردیم میگن فرهنگ موضوعش رو مدلم از کجا میگیره رو اجتماعی میگیره حالا تو قدمای خودمون فارابی بوده مسکووی ها اینا تعریف صنایع و معرفه بشری میکردن مثلا حالا الان میگن فرهنگ ولی بالاخره از علوم اجتماعی داریم ما میگیرن این مفهوم رو پس نباید نسبت اون نسبت فرهنگی در یک نظام حکمی ما بگو اجتماعی که میخواد برای ما موضوع تعیین کنه چیه اینا ما بفهمیم اول اینجا موضوع کار مشخص بشه اون بحث اول اگه یادتون باشه اولین بحثی که گفتم در مورد فقه تذیری که واسه شما متوجه نشدم گفتم اولش واضح نُه فقه تذیری فرهن از تو این بوتله اجتماعی در میاد می‌گه من مالم، رو کلازیات زیاد تو علم اجتماعی دریم. مثلا یک از کلازی که داریم، رو کلازی اسفالگراییه. یعنی چی میگه؟ اینا نیاخونید. میگه هر چیز، میگه انسان مثل هر امر طبیعیه. انسان سیگولوژی‌ها همسانی، اینو فیزیکیشتمو یه سلام می‌ذارم. نگاه پوزیتیویستین اصلا نمی‌شه. نه لاقوف نمی‌شه. نگاه این، نگاه من، نگاه کنه همش امر طبیعی نگاه هست میش. تغییرات اجتماعی اتفاق می‌میفته. امر طبیعیه. شما خودت رو بعدماش می‌شואن کنین هم همخون می‌گویند سازگار بکنین شما باید همسازگاری بکنین اینجا که فرق فرهنگی معنی نمیده شما اگر رو این فازی اونم اجتماعی می بخوای بحث کنید فرق فرهنگی معنی نداره اینجاست که میگیم فقه پذیرش رو باید بفهمیم واقعا می‌تونیم فرهنگ رو واسه اون برچسب می تاین کنیم این حکم پذیرش اما نه ما می که نه در اصل یه واقعیت اجتماعی است اما قابل ارزش‌دهی است این خیلی مهمه یه امر طبیعی نیست نروکنید مو دو نو روی کرد میتونیم تو علوم اجتماعی مطرح کنیم. یه روی کرد اینه که علوم اجتماعی دینی مطرح کنیم. حالا اسلامی من تو این نمیگم، برای اینکه اسلام یه مکتب فکریه، شریعت. ما میگن دین، دین طرح کنم بشه. علم اجتماعی دینی، وقتی میگیم علم اجتماعی اسلامی، فکر میکنن که ما فقه اجتماع اجتماع میگیم. ما نه، علم توصیف میخواهید بکنیم یعنی این تبیین اجتماعی مخواد داشته باشه. این علم اجتماع یا علم اجتماع یه دینی یا نه اجتماع یه غیر دینی که میگم غیر دینی چون که غیر دینی است که مکاتب متعدد داره مدرن در داره، پس مدرن مالام پوزیتیویست در هر چیزی و عصب کرده آه متاسف چیز زیاده ولی پس سر چیزیه که میگم علم اجتماع دینی این چیه نه اول سواد کنیم اگه بخش شد تا مثلا نسبت به علوم اجتماعی سکولارم یه صحبتی داشته باشه نگا کنی تو علم اجتماع دینی ما اول باد اگر روشمون سواد بشه و همه چیون مشخص باشه که خب بحث می‌کنیم دیگه. این موارد این مثلاً این بحث مثلاً مشاهده داشتیم این تو آیات الوت مثلاً بحث شده ما اینجامت فعلاً تو این مباحثه فرق مدرت اجتماعی این همین بحث رو از برهان استفاده کردیم که بحث جامعشاناتی اسلامیه تو فا. و باشه مشروطیتش ثابت بشه برای ما مسائلی نیست. به همون روشای استقلالی خودمون مثلاً عقلی بخوام بحث کنیم حکمی بحث می‌کنیم. اما عدلی بخوام بحث کنیم اجتهادی بحث می‌کنیم. و منهج فقهی خودمون. یا ما لازمونتا عقلیه رو میبونیم بس روش پرست نداریم اون چیزی که ما تو علم اجتماعی دینی الان باید بحثش بگنیم بسی امکان علم دینی هست یکم ابحام داره حالا تقریر و تفاصیل زیاده ولی بله حالا من سعی میکنم یه تقریر رو رست قرآن کریم رایه بدیم بحثمان روی که بحثش بگنیم نها کنین یه آیه داریم که صویت نگاهی ثبوتی داریم به علم اجتماعی دینی، نگاه یا علم دینی، نگاه اثباتی، نگاه اثباتی منابع، ما چطور کشف کنیم؟ از وقت‌ها وقتی میگیم علم دینی، میگن نه، شما مثلا بس فقط همیشه از قرآن در بیاری، یه سری میان سر نگاه اثباتی، سر منابع می‌ذارن. مثلا مسخره می‌کنم میگن خب مثلا شما اسلامی فیزیک اسلامی همه چی میخوای مسخره. مثلا فیزیک در نه نه. این نگاه باصمون که وقتی میگیم علم دینی اولا و به ذات منظورمون بس ثبوتیشه یعنی اینکه ماهیت علم دینی چیه نسبت علم و دین چیه میگن این خیلی مهمه بحثی که ما میام انجام میدیم مثلا میگن که خودم دارم بحث های زیاد شده که بخوام حالا عملی و نظری شده حالا حکمت نظریه که در عملیه رو وارد نمیشه بحث مستسری قرانیکی بخوای بحث کنیم میگوین این آیه فطرت خیلی مهمه فاقم بشکل دین حنیفه فطرت الله حلطی فتر الناس علیه لا تبدیل خلق الله زالگت دین القیم نیشی فاقم بشکل دین حنیفه نسبت به دین خالصانه قلت رو ارزه کن اخلاص داشت باش دیندار باش که این دین چیز دین حنیفه فطرت الله التي فتر الناس علیه یعنی این یعنی مرازم فطرت خدالاندی باش این فطرت چیست؟ از این فطرت خلقت الهی ها که این فطرت الهی، این خلقت الهی فتر این خلقت معنی کلب و خلقت تو آیم اینه همین خلقت الهی که خداوند مردم رو برون خلق کرده بعد اینجا نکته جالبه این بحث نظام آفری نشد خداوند متعال مطرح که این نظام افرینش نظام است بعد میشکم میکنه لا تبدیل خلق الله زالکت دین القیم و این آخرش میکرده یا این لا تبدیل خلق الله این خلقت خداوند این نظام آفرینش که درشیز تبدیل خوا... راه ندارد این همون دین قیم است این چیزی که ما میگیم دین سریع واقعا آیادی در میرسونه مثلا دین که وقتی ما میگیم اون مظاهر دین نگی میگه مثلا میگن خود تو میگن احکام اخلاق مثلا اینا مدل ثبوت دین نیست مدل اثباتیشه این مثلا شریعتی که خودش میینه اما اونجا بحث ما اینه که میگه این ذالک دین القییم یعنی سریان میگه ذالچا یعنی این ذالکه این خلق الله ای که اونجا توش هست این خلق نظام آفرینش همون دینه یعنی نیاکن میگم تاریخ واقعا تأمل نیازسه میگم ما در عالم واقع چیزی جز نظام آفرینش داریم نداریم پس اگر نظام آفرینش همون است این همون نظام آفرینشه در عالم واقع وقتی ما میخوایم علم یعنی چی علم اینکه یعنی حصول معلوم دیگه یا حضور معلوم لا حضوری مستولیه حضور بالاخره میخوایم معلوم معلوم ما کجاست تو واقع واقع ما چیه یا واقع نظام آفرینشه تو نظام آفرینش داریم میگید نظام آفرینش همون دینه این یعنی inverse ما میگیم علم دین عزیزان، ما وقتی از اراده الهی داریم صحبت می کنیم، وقتی این اراده، یا اراده تکیونیه، یا اراده تشریعیه، یا اراده تکیونیه خلاص یا اعتبارات الهیه. یعنی هر چه هست خداوند متعال، یعنی عالم بذاته که موحد بشید. این عالمو وقتی نگاه میکنیم همش عالم خداوندیه دیگه. مثلا تو میگیم علم دینی، یعنی علمی که در از همین عالم بحث می کنه. خدا عالمو چجوری میبینه؟ خلقت الهی میبینه. این تقریری که میگیم بیشتر سازوگار با مقرس آی جوادی داشته داره حالا دیگه دیگه هم هست ولی این تقریری که واقعا با قرآن سازوگاره حالا که اخیل کتاب منظرت اول هندسی معرفت دینی آی جوادی رو مثلا بخوند برای این دین همون چیه؟ همون واقع واقع جو دین نیست بینه شما؟ نیز هم احتمالی فیزیک دینی واقعیت نیست، یعنی وانی واقعیت که حتما بانم عملیه. چون آدم فیزیک میخواد چی کنه اسپانه، آدم طبیعی میخواد بره دیگه. واقعیت بره اسپانه. از واقعیت جز دین نیست. از ما تبدیلی داریم نمیگم که زاره رواه سراغ نر. تبدیلی داریم، فیزیک دینی داریم نمیدونم همه چه دینی داریم. اگه دین رو به این که دین همون این واقعیت من از خالقش خب این یه نگاهه بله تو فیزیک هم واقعیت داره بررسی میکنه اما منطقی از خالق بود تک تک مثلا ده میگه که خالقیت خدا رو انکار میکنه خب این که نشد که اما واقعی که خالق داره این میشه اون دین نمی‌گن حالا این نظام ت... آفرینش می‌گن یه نظام تکوین ما داریم یه نظام تشریع داریم تو نظام تکوین علوم اجتماعی کجا قرار میگیره حالا اینجا طول ما اجتماعی داریم سر انسان بحث میکنیم حالا کار سخت شد اینجا که ما اراده داریم اگه بخوایم مستقیم با واقع ربط پیدا کنیم که جبر پیش میاد که حالا با چکار کنیم چجور علم اجتماعی دینی امکان پیدا میکنه که بخوایم مثلا نسبت پیدا کنیم با فکر اینجاست که بعد اراده انسانو با خداوند متعال اراده اونو اراده الله صل على <تصفيق> محمد وعش درجو اینجاست نسبت اراده انسان رو با اراده خداوند بسنجیم چون گفتیم که واقع جز اراده الهی نیست هر از اراده خداوند متعال قرآن هم میگه که و ما امرنا الا واحده اراده خدا هم یکیه مظاهرش در هم خب انسان اراده انسان اساسا به ی اجتماعی چیه؟ کنید همونطور که انسان در خلقت الهی قرار میگیره، خداوند متعال به دلیل تکاملی که برای انسان قائل شده، حق تکاملی که قائل شده، ماده اختیار به انسان داده. خب این یعنی اختیار از کجا پیدا شده؟ اختیار واسه خداوند داده. نمیماز از این جهت یعنی یه جهته برسه که ما ارادهمون براد ی خداوند شد این مبدأ اراده رو میخوام بگم یه موقع هم بحث اصول اراده رو بحث میکنیم یعنی اراده خارجی که ما داریم افعالی که انجام میده خب این افعال ما با احوال خداوندا چه نسبتی پیدا میکنه اینکه افعال ماست این دیگه جوری علم دینی میتونه باشه نگاه کنید یه بحث خوبی شاید صدر داره بحث کلی کتابی شدم نگاه کنید خلاصه تفسیر موضوعی شهید بحث سنت های تاریخی در قران ایشون نگاه کنید جامعه مم. یک کیییسیت داره درست حیزارر انسانی داره اما قووادی برش فکی فرماست که مقعهش اگی سر سنت های م مطلق داریم سنت صورتنت های مشروب داره سنت های موضوعی داریم مثلا گی سو های موضوعی, موضوعی که مثلا خود خانواده است یا خانواده درسته به اختیار خودتون هر و خواستی مثلا کسی کنند ازدواج نکنه میتونم توی یه جامعه ای مثلا 20 سال کسی ازدواج نکنه مشکل نداره به اختیار خودشونه اما یه سنت خداوند اینه اگه عزوج نکنید جمعیت از بین میره، جامعه نابود میشه میره. این یه سنت الهیه. یعنی اراده شما تخت، اراده خداوند متعال قراریه. یعنی اراده جمعی خداست عامان، یعنی متعلق اراده خداوند، اراده جمع. یعنی جامعهام قانون داره. یه حیزیاتی داره، یه تکوینی داره. اینو باید لحاظ باشه. بشه. پس اراده انسان هم ذیل اراده خداوند تعریف میشه، بند. هم به بلاوازع مبدأ اراده‌اش که ما اختیارمون از خدا گرفتیم، هم بلاوازع عوامل خارجی‌ش. شما بحث قضا و قدر رو ببینید شما بحث همین میشه. بشه حضرت فهمودن که امیل المؤمنی سلام علی نکنال دیوار بودن حدیث که معروفه دیه کنال دیوار بودن دیوار در حال فروریختن بود حضرت کنار دیوار مادن هفتن کنار کنال که از قضای الهی قدر الهی فراغ میکنن قضای الهی چه بود؟ دیوار وقتی که در حال وقتی که زیرش خالی بیشه میریزه بگو دین مسلمان باشی کافر باشی هر جا باشی دیوار وقتی که مثل رو هوا باشی میریزه این هوا نگاه نمیداره این حکم ثابت الهی در این رو میکنه اما قدرش چی بود سنگ خدا من اراده داده اونم یعنی قدارش به چیه قدر قدا دام با ثابت الهی اونطور متغیرای ارادی انسان ممکن تغییرش بده تغییر یعنی به قول خارجی یعنی مثلا نگاه کن مثلا اونجاها گفتن که من کنار که مر دیوارایی میسرن که خب میره اگر هم قدره روش میگیم یا اینکه این پربوسیتو یعنی اینا کردن چه چیز متغیرها. بعضی وقت این اهل سنت میگن که چجوری میشه شما اراده افعال خدا مصلحت در نظر میگیره افعال خدا که مصلحت در نظر میگه. اما این قبول دنیای اراده تشریعی خدا خلق میکنن. هم نقطه هم اینجاست اتفاقا. که چون اراده تشریعی خداوند نسب به اراده انسان هست و مصلحت در اراده انسان وجود داره فقه همینطوری شکل میگیره. یعنی اراده عمل در فعل ماض مثلت در فعل ماست و خداوند متعال اون که در فعل ماست رو در نظر میگیره لحاظ می‌کنه. یعنی خداوند که در ذات خودش نظر من با این خیلی توضیح اجمالی مشخص میشه که علم اجتماعی دینی امکان دارد بحثش مفصل داره. امکان دارد که ما بگیم علم اجتماعی دینی یعنی انسان رو ما در میتونیم براش یک علم اجتماعی دینی تصور بکنیم اگه به این توضیح کسی اشکال داره بگیم این برای این اساس ما میتونیم در مقام موضوع شناسی از علم اجتماعی دینی برای یا علوم اجتماعی دینی برای موضوع شناسی در فقه فرنگی استفاده کنیم اما حالا چطور یه بخش از این پاسده این چطور بعد که تو منابعش میگه کنیم می‌کنین ما نگاهش به هم چی باشه؟ که عرض کردم. می‌می‌کنین ما روشون مشخصه تو سنت خداون. روشه اثباتی دارید؟ روشه اثباتیمون؟ یا حکمی نگاه میکنیم، یا فقهاتی نگاه می‌کنیم؟ استدلالی نگاه می‌کنیم. فقهات که می‌گیم عام، اگه بخوایم حکمی نگاه کنیم، با ساختار فلسفی خودش می‌گیریم جلو. اصلا نمی‌گیره. ساختار فلسفیش می‌گیریم جلو، بحث اون شکل میگیره. تشخصت ایبن فهیوت فلسفه بدا عملی مونه نه فقط نظری نه فلسفه اینکه میگیم حکمت به معنی این فلسفه که عمل این فکریه نظریه حکمت عملی مثل مثلا خاجو ناصری، سهروردی، افلاطون، بعد سهروردیه اجتماعی که کسایی مثل ابوریحان، اسمونو میارم مخصوصا که به نگاه بکنیم واقعا آثارش مثلا اخلاق ناصری خیلی, خیلی کتاب خوبیه واقعا هم تو موضوع خانواده هم تو موضوع سیاست هم تو موضوع خود اخلاق اخلاق هم تو با نگاه هم تبو تبو برای این نگاه کنیم با مناصرش اینا علم اجتماعی ده نیا من اجتماعی تفسیری اجتماعی علام‌التبتایی در المیزان یا بهتر میگم میتونید کتابه برای اینکه این بحث رو بهتر بدا کنید روش استمر شامل در قرآن و آی جوادین رو نگاه کنید جامعه تاریخ تاریخهای میصا واقعا مناب خیلی واقعاً قابل استفاده نگاه کنید این یه نگاهه تقریباً داریم با همین روشایی که داریم دیگه خودمون میدونیم دیگه همین واسه که تو قصول میکنیم میکنیم میکنی بعدا لما میکنیم می‌کنیم و همین راشه استماتیه خودمون دلالات سنجی می‌کنیم، دلالات, دلالات اجتماعی رو کشیم بیرون، دلایل روایاتشون. تا دلات اجتماعی فقهشو، دلات فخین، دلات اجتماعی تبیینی، یعنی می‌گین دلات فقهی تجویزیه. دلات فقهی اون یه ارذابی می‌کنیم، می‌خوایم گفتن، اصیل دلالات بر بوت فصلا. اما تو دلات اجتماعی وقتی می‌گیم، میکنیم می‌خوایم توضیح بدیم. توصیف بکنیم، علت‌ها رو بگیم. شوم تو رواج از واقعا تو رواجی که به اسم رواج اخلاقی می‌توانست فقط کلمه اخلاق ممنونیم، بدم می‌میم اهمیت را اون نداره روایت اخلاقی اخلاقیه دیگه. واقعا اینطور نیست. و کتاب دو الیمان بل کفر بهار که واقعا جامعه ترین بحث ما بوده این رواج است. که ما کارمان اخلاق و شنیده‌ایم مفهومی از این بحث ها شده. رواجی که به اسم رواج اخلاقی می‌شود. امتنان اینو دلیل رواجی است که برای اونو می‌شماهیم می‌تونیم استفاده کنیم. مشکل سندی امتقا ما اینجا کمتر مواجه هستیم این سند هم سندم ضعیفه چون به عقلیه خود به خود قران یه جوریه که ما رو میرسونه که اگر این مضمون حتی صحیح هم نباشه سندش درست هم نباشه مضمون جوریه که ما میتونیم بپذیریم مثلا اینجا در اوقات یه دلیل هستیم که کمتر سند اومده شده بخدا همین اساس بوده نه اینکه سرادوشون ضعیف بوده نیاز ندیدم به ذکر این نقطه المهمه تو واسه روایات رو. اگه خواستید واسه روایات باشین، ای این سری میره واسه سند نداره بدون مشکل. خیلی وقت‌ها روایات الان بسگی به کتابش داره. چه کتابی اومده؟ بعضا وقتا میتونم مثلا نجول بلاغه خب اینقدر روایات مشهورات مشهور رو نجول بلاغه جمع شده. خب بعدش هم سند نداره. خب مشهور بوده بین محدثین زمان خودش. نیاز ندیده دیگه. فرضاً شما مثلا این حدیث یک مثلا زمان خودشون یک جمله معروف از امام خمینی باشه دیگه کسی مثلا نمیپرسه که مثلا کتاب صحیفه امام نمیشه کدوم ام تاریخ گفته که میگم همینطوره این نکته خیلی مهمی حالا افراط نماد بکنیم ما قرائینو باید ببینیم ولی این نکته خیلی مهمی میتونه روایات رو که اینقدر صریح روایاتی رو نزنیم که نه این سندا رو دقت بکنید پس این یه مواجهه بقول در اون مکتبیه یه مواجهه نمیکنید میگم تو فاز علوم اجتماعی سکولار خودمون نمیکنید تو علوم اجتماعی سکولار ما از طریق همین مواجهه می‌تونیم رسیم خودشناسی بگیریم مشروط بریم که علم اجتماعی دینی رو پشت سر خودمون داشته باشیم چرا من میگم برای اینکه نگاه کنین هر علمی یه فلسفی علمی داره یه تاریخ علمی داره ما نمیتونیم ازش دور بشیم اگه شما مستقیم بدون اینکه مبانی خود دستت باشه بریم مسئله از اون بخوای بگیری دیگه واقعا فکر عوض میشه اما ما این سری قضیه خیلی مشکل داریم آدمایی که واقعا مقیدن مذهبیان اصلا انقلابی واقعا در حد خودم ولی فکر فیک که مثلا وارد محله اجرا که میشه فکر مدیریتیش فکر مدیریتی سرمایه‌داریه بعد می اینترا این, این کارو میکنیم میگه دنیا این کارو میکنه میگه خب دنیا این کارو میکنه که می دنیا, کار دنیا, کار دنیا الگوش فرق میکنه با ما نظام فیکش فرق میکنه نظام معرفتیش فرق میکنه اگر قرارو مثل دنیا رو حکومت کنیم چرا حکومت اسلامی شدیم اینجا خیلی مهمه این ماجرا طمو آدم ما ها... این طرف انامده خوبیه واقعا روزدار روز نمازخون روزگیر ولی نمیدونه میشه فضای این فضا... معرفت اناره گنجانده میشه و همین خاطر الا قضازی که وارد این بحث بشن واقعا اگه مثلا شد این کتابای آقای ها رو بخونید مثلا خیلی خوبه این خلا فلسفی این خیلی بحث زیاد توشه من خب مثلا اینا به این خاطر نیازشو آی فασانه دکس چون کنه چون جمع کردند، تو این کتابش میست کتاب علم و فلسفه ایشون. به جهانای کتاب جهان های اجتماعی اخیرا رو می کنا بود جامعه شناسی از ایشون متأثر شده بررسی سری سند 23 و مسائل فرنگی واقعا آثارشون ایشون قابل است. خیلی واقعا برای این که میتونه بتونه یک تفکر اجتماعی و تبیین اجتماعی برسه خیلی واقعا لازم لازمه کتاباشو نمیشه سری مطالعاتی بذاره واقعا اینا بخونه یا کتابی که ایشون نمود سقوط و سقوط انسانی در نظام حکمت متعالیه رو در خصوص مساله انسان شناسی مطرح کردن که واقعا تو نگاه جامعه شناسی واقعا به دردادم نکنه نگاه کنین ما چهار مواجهه میتونیم به علوم اجتماعی سکولار داشته باشیم یک نام مواجهه نگاه کنین اینه که به نظام مسائل اونها آشنا بشیم نکنین اینه اول توضیح بدن نکنین وقتی من میگیم علوم اجتماعی علوم اجتماعی سکلست جامعه شناسی. مردم شناسی روشان شناسی اجتماعی حالا اینجا که ما میگیم خصوص جامع شناسی منظه. در جامعه شناسی ما یه نظریهای جامعشناسی جامعه شناسی داریم یه حوزه های جامعه شناسی داریم یه روش تحقیق. داریم. میانکن تو نظریه جامعشناسی جامعه شناسی یه حالا پس بلوم اجتماعی که جاخیم یه نظریه جامعه شناسی داریم که مثلا همین هم, هم نظری بزرگدیویستی که گفتم. یه حوزه های جامع شنناسی هم جامع شانسی خانواده جامعه شناسی فرهنگ جامعه شناسی فرهنگ هم اینجا کار داریم، جامعه شناسی خانواده ما اینجا کار داریم. این سه تا حوزه پژوهشی ام، مثل مثل مطالعات موسیقی، مطالعات فراغت، مطالعات فرهنگی ما با اونم اینجا کار داریم. یعنی شما این کتابا رو باید نگاه کنیم. این واقعا مثلا نگاه کنید. جامعه شناسی ارتباطات مثلا. نه واقعا ما با این حوزه‌ای که میگم فقط کلامی فرهنگ نشه، بعضی جور ن... سردرش نباشه، ولی بحث فرهنگیه. جامعه شناسی شهری داره بحث می‌کنه. تو جامعه شناسی شهری بیشتر مثلا بحث توسعه اقتصادیه، ولی خب ما میتونیم بحثی خودمون بعد به با قول زکاوات داشته باشیم طلبه هسه طلبه گیون مثلا بریم بحث احساسا کنیم بکشیم بید. این یه نگاهه دیگه کنید نگاه ارزیابی اون این و داوری در این حوزه چون این نظریه رو میگیره یه اینجا که ما بحث میکنیم چه حوزه‌ای جامشناسیه دوباره جامشناسی فرهنگ میشی مسائلشو میبینی این ارزیابی که اینجا میگیم نظرزیابی فقهی یا نظرزیابی اجتماعی یعنی شما با اون پشتوانه علم اجتماعی دینی میای اینا رو ارزیابی میکنی یا مثلا مسئله‌ایه مثلا انجام هویت فرنگی. یهو مثلا هویت فرنگی رو ما اینجور تعریف میکنیم نه نه ساختن دوم این پس نسبت به فرهنگی به علوم اجتماعی سکولار تموم شده دیگه از خدمتتون خارج بشه. چون دیگه نمیشه پس اون آگاهی رو یه ارزوی اجتماعی داشته باشه. مثلا اون مبانی که خودمون داریم مثالش مثلا مثلا مثلا هویت فرنگی مثلا هویت فرهنگی رو ما خودمون رو تعریف می‌کنیم؟ چون مهمه نه نه راسه این نظری صرف نیست نما موضوع شناسی الان مثلا گفتم یه نمونهشو هم دست فرهنگی خودمون که تعریف کردیم این فرهنگ اونها چجوری تعریف می‌کنن ما چجوری تعریف می‌کنیم شاید با خود سنت خودمون کسای دیگه جورای دیگه تعریف می‌کنن حالا اونایی که تو فلسفه مثلا من قویتاً اون رو تعریف بکنم یک تاییام جیدا از جایزم خانه شاخ شده فلسفی فرهنگی میتونید یه اصل بنیادی مبادله فلسفه‌ای بگیم که خواستم که رو هم نگاه کنید ولی فلسفی فرهنگی شون جواب این نگاه. فکر تو این نگاه چیکار می‌تونه بکنه این نگاه هم نگاه تفسیر استنطاقی شایسته است، که هم تفسیر موضوعیشون مطرح می‌کنن. چیزیشون میگه که چی انجام می‌کنن، میگه شما هر واقعیت اجتماعی که باشید، هستی هر چقدر که واقعیت اجتماعی میاند هر چقدر که یافته‌های علمی است، را اشتباه می‌برند. این بیان شایسته است. چون میگه که تو ابتدای تفسیر موضوعیشون توی همین آلامدستی قرآنیشون باصن گونه کی میگم آقا هر چقدر که بده ما یافتمون از قرآن بیشتر میشه حالا قرآن دوغان یک ترید من ادله مرجوباتم هست با همین مبنامون هم میتونیم اینا رو بیم ارزیابی کنیم بر اساس نصوص خودمون بر اساس مناهج حکمیه خودمون دیدگاه نظری اون دیدگاه عملی اون بررسی کنیم برایشون ارزیابی اجتماعی داشته کار بول دومه که ما از علوم اجتماعی توی سکولار دو فق فرنگی میتونیم داشته باشیم از باب تعارف الاشیاء باز داره اینا کنین یعنی چی یعنی مون نظام مسائل موضوعاتی که تو حوزه‌های جامعه شناسی مطرح شده و تو حوزه‌های علوم اجتماعی دینمون به خاطر فرجوش‌های کمی شده مثلا مخفول بابا شده مساله رو می‌گیریم از اونها مثلا این مساله ای شده هویت فرنگی بوده فراقتی گزینی بوده ارتباطات رسانه بوده خب ما کار نشونمون کرده مساله از اونها می‌گیریم بالاخره باقولی طرف مقابل خودت رو بشناسی تا بتونی دیگه بقول حالا جامعه شناسا میگن دیگری خودت رو بشناسی تا خود تو به فهمی این خیلی مهمه. بفهمید تا بیا استفاده کنیم هم سریعتر تمامش کنم بون این نگاهی دیگه ن بالاخره اینها کنه هر جامعه شناس بالاخره یک بانیک عضو جامعه یا خودش یک زیست اجتماعی داره یک تجربه زیست ای داره.ا چه تجربه زیست آات بکنه با تا همین مبنی معرفتی خاص خود شده اون برای یک زیست اجتماعی خاص داره بالاخره اون زیست اجتماعی برای فهم اجتماعی ایجاد میکنه. از اون جهت که جامعه شناسسی دق های اجتماعی خیلی بالاتر میره پس در نتیجه میتونیم از دست می استفاده های استفاده تو مای داشته باشیم. اون تو گفتم پیشنه رود داشته باشیم پیشنه رو که داشته باشیم میفهمیم آقا کجا زیگزک رفته برند به اون کدام مبوع خودش شما مثلا تو ده مبانی که با... مس های حوزه های شانسی هم که وارد میشی می روی شرید ذکر ذیک میشه. خ روی کتاب ش یوری میهای قضاوت کنی؟ دوباره اونجا میان سره که جامع شانسی دیین و بهش پربه پررددازی مسئله آخر روشش های تغییره. یاکنین رو بهش های ما هم طول اجتماعیه. و <تغارف> تا خودمون داریم مثلا روشی طریق کمی گفته میشه کیفی گفته میشه پیمایش اینو میگویند روشی طریق کمی مثلا بر آمار و نمونه گیری این ها اینها روشی طریق کیفی مثلا تحلیل گفتمان زهر روایت مثلا درسی در متونه کیفی از وقتی گفته میشنین بررسی دلالت هاست اینجور میگیم شما این روش ها میگویند درسته این روش ها رو مبانی باز گفته شده ولی بالاخره این مبنی گفته شده بالاخره یا یه عقلی توش بوده یه آ... سیستم عقلایی بوده یا ریاضیاتی بوده توش میگن ریاضیات اتفاقا نقش خیلی مهمی تو روش تحقیق داره و جامعه شناسی ما به با خیلی بار ریاضیات واقعا انس داره خوب ریاضیه من میگم که شما تو ریاضی هم بخوای اشتغال کنی میگم نه این مبنی ریاضی رو من قبول ندارم اون دیگه یه بحث دیگه‌ست ولی خب بالاخره ریاضیه بالاخره تا شرطه میشه بالاخره جنب بسمنده خودم منجری کردم حالا یه استقرا این تو مسئله همینه که توی روش‌های تحقیق که حس استقرائات و ما این استقرائات رو زمام چه واسه بتونیم به یقینیات تم از بر اون برگردونیم دیگه خاصیتو نکنه خودم میسپارم بحثای دیگه همون بس منطق حکمرانی رو یارم کنیم و محمد و علی